کتاب افسانه های ایرانی به نویسندگی خانوم فرزان فرزاد ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افثانه سوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی گوینده آرزو مقدم در ایام قدیم در گوشه از این جهان پهناور مردی زندگی میکرد به نام پیر دانا که از بزرگان و نیکان دوره خودش بود از قضا در سفری دوردست در بین را سخت مریض شد بیوهزنی در خونه خودش به اون پناه داد و شب و روز از اون پرستاری میکرد تا خوب بشه و بتونه از جاش بلند شه. در آخرین شب به ویوهزن گفت در این مدت تنگ دستی و بینایی تو رو با چشمام دیدم در عوض این همه زحمتی که برای من کشیدی پسرت احمد رو به من بسپر تا در سیر و سفر همراه من باشه به اون چیزهای زیادی یاد میدم که اگه اهلش باشه و پاک دل به عزت و سعادت میرسه بیوزن خوشحال شد و قبول کرد که احمد رو بهش بسپاره به شرط اینکه راه و رسم زندگی رو بهش یاد بده و بعد از دو سال اون رو بهش برگردونه. صبح اون شب بیوزن دانای پیر و احمد رو تا در همراهی کرد و پسرش رو بغل کرد و در گوشش گفت حالا که بخت با تو یار شده و با چنین مرد بزرگ و دانایی به سیر و سفر میری چشم و گوشت رو باز کن که راه خطا نری و به سلامت پیش من برگردی. احمد به مادرش اطمینان داد که پسر خوبی باشه و حرف گوشگم باشه دنبال پیر دانا به راه افتاد پیر دانا از جلو و احمد به دنبالش رفتن و رفتن و رفتن از دشتها و بیابان ها گذشتن. از دره ها و دامنه کوه ها عبور کردند و از چندین شهر و چندین آبادی رد شدن و رسیدن به یک صحرای درندشت که سروتا نداشت. اما در این صحرای عجیب همه چیز برای احمد تازگی داشت. پرنده ها، گل ها، گیاهانی رو که می دید که تا اون لحظه ندیده بود. و برای اولین بار در عمر کوتاهش خوشحال بود که غم آب و نون نداره و مجبور نیست که از صبح تا شب به ناله ها و شکایت مادر فقیر و بینباش گوش بده. پیر دانا مثل یک پدر مهربان مراقب حالش بود و مثل یک معلم دلسوز به سوالاتش جواب میداد. احمد باهوش و کنجکاو بود هر چیزی رو که نمیدونست و در موردش آگاهی نداشت میپرسید و پیر دانا براش دقیقا همه رو توضیح میداد. و گاهی یک مطلب رو چند بار و هر بار مفصل‌تر براش توضیح می‌داد تا احمد خوب بفهمه و احمد راضی و خوش و خورم بود که بخت اینطور باها شیاری کرده اما در بین راه شبی رو در کاروانسرایی صبح کردند. صبح که شد احمد حس کرد که مریضه و قدرت و نیروی اینکه از جاش بلند بشه و نداره پیر دانا دارویی رو که از قاطی کردن ریشه های گیاهان درستش کرده بود جوشون دو، بهش داد و بهش توصیه کرد که بخواده و از جاش تکون نخوره. چندین شبانه روز در کنارش بیدار موند و ازش مراقبت کرد تا حالش بهتر بشه و دوباره به راه افتادن و به سفرشون ادامه دادن. و از اون پس احمد بیشتر خودش رو وابسته محبت پیر دانا میدونست و مرتبا میگفت ای کاش روزی بتونم محبتهای شما رو جبران کنم. و پیر دانا لبخند میزد و می گفت اون روز میرسه اون روز به زودی هم میرسه. چند روز بعد پیر دانا و احمد از بیابان عبور کردن رسیدن پای یک تپه بلند از تپه بالا رفتن و به دیوارهای سنگی تو در توی رسیدن که انگاری گذرگاه عقاابها بود. به هزار زحمت از لابلای تخت سنگ ها عبور کردن و رسیدن به جایی که دیواره سنگی به صورت نیم دایره به همدیگه وصل شده بودند. پیر دانا در اینجا به احمد گفتش پسرم به مقصد رسیدیم. حالا در گوشه بشین و خوب نگاه کن و یک کلمه هم حرف نزن. احمد روی تخت سنگی نشست. پیر دانا جلو رفت و بوته های خشک گیاهان رو از اطراف جمع کرد و روی هم ریخت و آتیش زد. از کیسه کوچیکی گرد قرمز رنگ در آورد رو و روی شوله های آتیش پاشید و در مقابل آتیش زانو زد و وردی رو خوند که احمد معنی یک کلمهش رو نمیدونست. بعد از چند لحظه شوله ها سبز و زرد و بنفش شدن و ناگهان در صخره روبرون شکاف کوچیکی باز شد پیر دانا به احمد اشاره کرد که جلو بیاد احمد از جاش بلند شد و جلو اومد و با حیرت به شکافی که در بین صخر باز شده بود نگاه می کرد پیر دانا بهش گفت پسرم تو باید وارد این شکاف بشی و جلو بری. یه نفر به باریکی و لاغری تو خیلی آسون میتونه از این قسمت خودش رو به انتهای راه رو برسونه. از این راه به راه روی تنگتری میرسی که باید خیز از اون بگذری تا به یک در آهنی برسی. در رو که باز کنی وارد تالار بزرگی میشی و چیزهایی که در اطراف اون تالار میبینی که باید بهشون بیتوجه باشی و رد بشی بری تا برسی به تالار و تالارهای بعدی. در یکی از این تالارها شمدان دوازده شاخهی رو میبینی که در گوشه ای افتاده. اون رو بردار و برای من بیار. این کار شجاعت میخواد. احتمال داره در اون تالار مارهای خطرناکی از سوراخ بیرون بیان و به تو حمله بر بشن. اگه از ما رو میترسی؟ بگو تا از همینجا برگردیم و قضایه رو فراموش کنیم؟ احمد گفت من از چیز نمیترسم. آرزو داشتم که یک روز محبت های شما رو جبران کنم و حالا میرم و شمدان دوزه شاخه رو پیدا می کنم و میارم. پیر دانا گفت فقط یادت باشه که به هیچ چیز جز شمدان دست نزنی. و وسوسه نشی که چیز دیگه ای رو برداری و با خودت بیاری من این شمدان رو میخوام و دیگه هیچ چیزی نمیخوام احمد قول داد که به چیزی دست نزنه و به اشاره پیر دانا مشعلی رو روشن کرد و اون رو به دست گرفت و به سختی از شکاف سخره گذشت و خیز از راه روی تنگ و باریک عبور کرد و به یک در آهنی رسید دستگیرهٔ زنگزده در رو چرخوند در آهنی نالهای کرد و باز شد احمد وارد تالار بزرگی شد و در روشنایی مشعل چیزهایی به چشم دید که از حیرت در جای خودش خوش شد انگار قدم به تالارهای کاخ پادشاهی گذاشته بود نقشها و تصویرهای روی دیوار انقدر زیبا بود که چشم از دیدنشون سیر نمیشد. در یک طرف نقش شکارگاهی بود که شاهزادگان سوار بر از سرکش تیر در کمان داشتند و شیران بحشی رو نشونه گرفته بودن و در طرف دیگه نقش دختر زیبایی بود با موهای بلند و مباج که در جام پیرمرد مرد شراب میریختند. کف تالا رو با قالی ریزباف و خوش نقشی فش کرده بودن و در سکنج هر دیوار مشعلدانی بود از طلا احمد گیج و حیرت زده شده بود به تالار بعدی رفت که از تالار اول شکوه و زیبایی بیشتری داشت نقاشی روی دیوارها و قالی‌های کف تالار زیبایی خیره کننده ای داشتند و در پای هر دیوار چندین صندوقچه طلایی دیده می شد احمد که نمیتونست از کنجکابی دست برداره جلو رفت و در یکی از صندوق ها رو باز کرد و مبهوت شد. اون صندوق تالب پر بود از دانه های علماس و یاقوت. احمد که توصیه پیر دانا رو فراموش کرده بود وسوسه شد و در صندوق دوم رو باز کرد و از تعجب دهنش باز موند. این صندوق پر بود از تاجهای الماس نشان و بعضی از دانه‌های الماس انقدر دروش بودن که در روشنایی مشعل مثل خورشید می‌درخشیدند. مثل این بود که خورشید رو در صندوق پنهان کرده باشند. احمد بیش از این تاب نیاورد. جلو رفت و در تمام صندوقها رو باز کرد که همه بدون استثنا پر بودن از چیزهای بسیار گرانبها ها برق جواهر و طلا چشم احمد رو خیره کرده بود. نتونست جلوی خودش رو بگیره. با حسل و دقت دروشترین علموزها رو انتخاب کرد و لابلای شال کمرش گذاشت. و به تالار بعدی رفتش که در و دیوار رو با تیر و کمان و نیزه و شمشیر و سپر تزئین کرده بودند و همه ابزار آلات شکار از طلای ناب بود و کف تالار رو به جای قالی و قالیچه با آجرهای ریز و درشت طلا فرش کرده بودند احمد از خنجرهای طلای جواهر نشان بیش از همه خوشش اومده بود و نمیتونست در مقابل وسوسه های دلش مقاومت کنه جلو رفت و چند خنجر طلا رو برداشت و اونها رو در جیبهای گشاد لباس خودش پنهان کرد انقدر سنگین شده بود که زانوهاش تا میشد و به زحمت راه می رفت. در تاره بعدی چیزهای گرانبها و خوردریزهای عجیبی در گوشه کنار پهلوی هم چیده شده بودند که بعضی از اونها انقدر زیبا و چشمگیر بودند که احمد طاقت نیاورد و از بینشون گردنبند و علنگو گوشوار انتخاب کرد و در جیب خودش گذاشت و سنگینتر شد تا اونجایی که همه نیروی خودش رو جمع می کرد تا بتونه قدمی برداره و در همین زمان چشمش به شمدان دوازده شاخه افتاد که از میز یا فلز کمبه ها ساخته شده بود و در میان اون همه چیزهای گرانبها ها خار و بیمقدار به نظر می رسید و به ناچار چون به پیر دانا قول داده بود جلو رفت و شمدان مسی رو در کیسهی که برای این منظور آورده بود جا داد که یه دفعه احساس کرد زمین زیر پاش می لرزه و با این لرزش به زمین افتاد و مشعلش خاموش شد همه جا در تاریکی فرو رفته بود احمد از این می ترسید که سخف روی سرش بریزه با وحشت از جاش بلند شد و چند تا از خنجرهای طلای جواهر نشان رو از زیر لباس و لابلای شال کمرش درآورد و در کیسه جای داد تا بتونه راحتتر راه بره و با این وضع مدتی از این طرف به اون طرف میدوید. همه جا تاریک بود از ترس اینکه زنده بگو شده باشه ناامیدانه روی زمین نشست. چند دقیقه به همین حالت موند جریان هوا رو روی صورت خودش حس می کرد. مثل اینکه نصیم میوزید و بادی میومد به بالای سرش نگاهی کرد. روشنایی کمی رو دید از شکافی نور به درون میتابید از جاش بلند شد و برای اینکه از این جای تاریک نجات پیدا کنه تمام نیروش رو به کار گرفت به یک ستون سنگی آویزون شد و خودش رو بالا کشید و با زحمت زیاد از اون شکاف بیرون رفت آفتاب بالای سرش بود و در مقابل اون تا چشم کار میکرد بیابون بود هر چقدر این برونور رو دید تا پیر دانا رو ببینه دید از پیر دانا خبری نیست تنها بود در یک بیابان براهوت دست به شال کمر خودش برد و جیبهای گشادش رو نگاه کرد و مطمئن شد که یک عالم تلا و جواهر و اشیای قیمتی با خودش داره دلش قرص شد اونها رو جا, به جا کرد قسمتی رو در کیسه و در کنار شمدان مسی جا داد و بقیه رو جوری در زیر لباسش قایم کرده بود که از بیرون چیزی معلوم نباشه و با خیال راحت کیسه رو روی دوشش گذاشت و به راهش ادامه داد بار سنگینی رو با خودش هم میکرد اما فکر میکرد که تحمل چنین بار با ارزشی خیلی ارزشمنده. و به همین ترتیب شبها و روزها رو طی کرد و گاهی نون و پنیلی از روستهای سر راش می خرید و می خورد تا گرسنگی اون رو از پا در نیاره هر وقت خسته میشد در گوشه دور از مردم می خوابید تا کسی سر از کارش در نیاره و عاقبت بعد از چندین ماه راهپیمایی به خونه رسید مادرش در رو به روش باز کرد انتظار نداشت که فرزندش رو به این زودی ببینه. با نگرانی پرسید: "چی شده؟ چرا دانای پیر تو رو نزد من نیورده؟ پس اون همه قول و قرار چی بود؟" احمد در جواب گفت: "مادر، چند روزه که چیزی نخوردم. اول چیزی بیار تا بخورم، بعد از اون همه چی رو برای توضیح میدم." مادرش رفت غذای شب مونده رو آورد. و جلوش گذاشت احمد مثل آدمی که چند ماه غذا نخورده بود همه رو خورد و بلعید و کزای آب و برداشت تا میتونست آب خورد و کمی نشست تا حالش جا بیاد و اون وقت داستان خودش رو از اول تا آخر گفت و قبل از اون که مادرش اون رو سرزنش کنه شال کمرش رو پاس کرد و طلاها و جواهرات رو از لابلای زیر لباس خودش بیرون آورد و همه رو کف اتاق ریخت مادر احمد وقتی چشمش به اون همه طلا و جواهر افتاد که در روشنایی برق میزد خوشحال شد و گفت شاید پیر دانا از این کار منظوری داشته که به عقل ناقص ما نرسیده اما حالا که چنین ای داریم نباید قصه بخوریم میتونیم تا آخر عمر خوب و آسود زندگی کنیم اون روز تا وقتی که هوا تاریک شد مادر و پسر نشستن و نقشه کشیدن که اون همه طلا و جواهر رو چطور بفروشن و پول اون رو چطور خرچ کنن اما اصرار داشت که با اون پولی که به درس آورده بود و باداوردن بود کسب با و تجارت داشته باشه و به یک کاری بزنه این پول رو اما مادرش با اون موافق نبود میگفت که تجارت آگاهی و تجربه میخواد و عاقبت مادر و پسر بعد از بحث طولانی غذایی خوردن و گنج باداورده رو در صندوقی گذاشتن و در اونو قفل کردند و در دو طرف صندوق خوابیدن و تا صبح خوابهای شیرین دیدن و با طلوع آفتاب بیدار شدن قبل از هر کاری قفل صندوق باز کردن اما رنگ از روشون پریده بود و نزدیک بود نفسشون بند بیاد چون توی صندوق جز شمدان مسی چیزی نبود و از اون همه طلا و جواهر و اشیای گرون قیمت اثری به جای نمونده بود و اون وقت بود که احمد متوجه شد چه بلایی به سر خودش آورده و مادرش سرش فریاد کشید و اون رو سرزنش میکرد که چرا حرف پیر دانا رو گوش نداده و نتونسته جلوی وسوسه های نفسش رو بگیره اما به گومگوهای مادر و پسر فایده نداشت همه چیز از دست رفته بود و اونها مونده بودن با زندگی فقیرانشون و اون شمدانی مسی دوازده شاخه اون روز با اوقات تلخی گذشت و اما همین که هوا تاریک شد، مادر به آشپسخونه رفت تا قضای آماده کنه و احمد شمدان مثل دوازده شاخه رو برداشت و به آشپسخونه برد و شمعی رو در یکی از شاخه های اون گذاشت و روشن کرد تا مادرش در روشنایی شام غذا درست کنه. چند لحظه نگذشته بود که شعله های شم بالا رفت و دور خودش چرخ می زد. و از بین شله ها دردیشی با لباس بلند و ریش دراز بیرون اومد. درویش انقدر لاغر بود که انگاری پوستی رو بر استخوانی کشیده بودن. احمد و مادرش در جای خودشون میخکوب شده بودن و به درویش نگاه میکردن. درویش در گوشه نشست و در حالت خلصه فرو رفت و یک باره از جاش بلند شد. دور خودش چرخ زد و چرخ زد و چرخ خوردنش سرعتش بالاتر رفت و درست مثل فرفره دور خودش می چرخید. چند دقیقه طول نکشید تا درویش از چرخ زدن بایستاد و یک سکه کوچیک طلا از لای انگشتانش در آورد و جلوی پای احمد انداخت و خودش رو غیب کرد. احمد خم شد و سکه طلا رو برداشت و به مادرش داد. با این سکه خرج چند روزشون در بود. شب بعد احمد دوازده شم در دوازده شاخه شمدان گذاشت و همه رو روشن کرد. شوله ها زر زر روشن تر شدن و دوازده در زرد چهره و لاغر و لباس بلند و ریش دراز از بین شله ها بیرون اومدن و مثل فرفره دور خودشون میشرخیدن و بعد از چند دقیقه از چرخ زدن با ایف و هر کدوم یک سکه طلا جلوی پای احمد انداختن و غیب شدند. چند شب پشت سر هم احمد این کارو تکرار کرد و هر بار دوده سکه طلا به دست می آورد. اما نتونست، پیر دانا رو که انقدر در حقش محبت کرده بود فراموش کنه سرانجام یه روز شمدان 12 شاخه رو در کیسه‌ای گذاشت و به مادرش گفت که میره تا پیر دانا رو پیدا کنه و شمدان مسی رو بهش بده مادر در حقش دعای خیر کرد و احمد به راه افتاد در اون مدت که با پیر دانا هم سفر بود از اون شنیده بود که در کدوم شهر زندگی میکنه و احمد به اون سو رفت و شب و روز راه طی میکرد و کمتر در جایی توقف میکرد و سرانجام روزی به اون شهر رسید و از رهگذران کوچه و خیابون سراغ پیر دانا رو میگرفت که همه اون رو میشناختن و با عزت و احترام ازش نام نام بردن احمد پرسون پرسون میرفت تا به میدونی رسید از چند بچه که در گوشه میدان بازی می کردن سراغ خونه پیر دانا رو گرفت بچه ها با انگوش قصر بلندی رو که در اون نزدیکی بود نشونش میدادند. احمد گما میگن که اونا دستش انداخته بودن و با خودش میگفت پیر دانا کجا این قصد کجا این قصد باید از اون شاهی باشه پیر دانایی که من میشناختم حتما توی کلبه کوچیکی زندگی میکنه و با تردید جلوتر رفت به چند قدمی قصد که رسید چند نفر رو دید که لباسهای های زر پوشیده بودن و به دربانی قصد مشغول بودن خدمتکاران با لباسهای های تعمیز در راهروهای روهای قصد در رفت آمد بودند، و چند نفر از اونها که متوجه اون شده بودند بیرون اومدن و ازش پرسیدن که چرا اینطوری کنجکاوانه به قصد نگاه میکنی و چه منظوری داری احمد که از سر روستایی خودش در مقابل اونا شرم زده شده بود جوابی نداد اما اونها اصرار کردند و نارچار شد که جواب بده گفت اومده بودم پیر دانا رو ببینم بچه ها با من شوخی کردن و این قصد رو به من نشون دادن. یکی از خدمتکاران که لباس آبی رنگی پوشیده بود با یراخهای تلایی بهش لبخندی زد و با ادب و احترام گفت همراه من بیاید تا شما رو به حضور پیر دانا ببرم. اینجا منزل پیر داناست. احمد گیج و متحیر دنبال اون به راه افتاد. از چندین راهرو سرسرا گذشت که با قالی‌های گرانبها فر شده بودند و های طلایی رو به سخت آویخته بودند و خدمتکاران لباس و با ادب از این سو به اون سو می‌رفتند بعد از گذشتن از چند راهرو وارد باغه شدند که پر از گل و درختان میوه بود و عطر ها در فضا پخش شده بود احمد باورش نمیشد و خیال میکرد که حرفش رو نفهمیدن و میخوان اون رو به حضور پادشاه قدرتمندی ببرند و اطمینان داشت که تا دا چند لحظه دیگه اتفاق روشن میشه و اون رو با توسری و لگد بیرون میندازن و اون خدمتکار با ادب و خوشلباس بدون توجه به افکار و تصوراتش در نهایت احترام احمد رو به گوشه ای از باغ برد که اونجا عمارت کوچیکی بود ولی با باشکوه که گل های رنگارنگ از در و دیوار اون بالا رفته بودن. وقتی به در ورودی امارت رسیدن خدمتکار به احمد اشاره کرد که در همونجا منتظر بمونه و خودش وارد امارت شد و بعد از دو سه دقیقه اومد و به احمد گفت که دنبال اون بره احمد دنبال اون رفت و چند لحظه بعد پیر دانا رو در اتاقی بزرگ و آفتاب رو دید که در گوشه روی توشکچهی نشسته بود و به بالشی تکیه داده بود. خدمتکار به اشاره پیر دانا از اتاق بیرون رفت و احمد همین که خودش رو با پیر دانا تنها دید گریه کرد و خم شد و پای اون رو گرفت و از روی التماس و گریه و زاری خواست که پیر دانا گناهش رو ببخشه و بعد از جاش بلند شد و شمدان دوازده شاخر رو از کیسه درآورد و جلوی استاد گذاشت. پیر دانا نگاهی به سرطاقای احمد کرد و گفت راستش رو بگو که برای چین جا اومدی؟ از من چی میخوای؟ احمد سرش رو پایین انداخت و با شرم گفت اومدم که گذشته رو جبران کنم و از این به بعد جز شاگردان خوب و راستگوی شما بشم. باور کنید که منظور بدی ندارم. پیر دانا گفت احمد تو جوانی هستی بسیار خام و حقه باز. خیال میکنی من فریب حرفای تو رو میخورم. در نگاهت میخونم که در قلب چی میگذره. اطمینان دارم که اگه میدونستی این شمدان دوازده شاخه چه ارزشی داره اون رو برای من نمی آوردی. حالا برو گوشه بشین و نگاه کن تا بفهمی که با این شمدان چه کارها میشه کرد. پیر دانا از جاش بلند شد و دوازده شم در دوازده شاخه شمدونی گذاشت و ها رو روشن کرد. و چوب بلندی در دستش گرفت در گوشه وایستاد چند لحظه بعد شوله ها شوله و دوازده درویش از میان شوله ها بیرون اومدن و مثل فرفره به چرخش افتادند پیر دانا قدمی جل گذاشت و با چوب بلندی که در دست داشت بیرحمانه به سر و گردن دربیش ها میکوبید و اونها را به سرعت میچرخوند و مرتبا از لای انگشتانشون سکه های تلا رو جلوی پای او می و هر چه پیر دانا بیشتر کودکشون می زد سکه های بیشتری رو تقدیمش می و به این ترتیب چند دقیقه بعد جلوی پای پیر دانا به اندازه قد و قامت اون سکه های تلا روی هم ترنبار شده بود و این وضع ادامه داشت تا اینکه پیر دانا از کتک زدن درویش ها دست برداشت و اونها از چرخش افتادن و لحظه ای بعد غیبشون زد و پیر دانا به احمد که مات و متحیر در گوشه نشسته بود و این صحنه رو تماشا میکرد گفت حالا متوجه شدی که این شمدان مسی چه قیمتی داره و ارزش اون از همه گنجینه ها در دنیا بیشتره اما این نکته را هم به تو بگم همه این سکه ها با یک مش ریگ و سنگ برای من تفاوتی نداره احمد در این موقع با تصورات عجیب خودش سرگرم بود و به حرفهای پیر دانا گوش نمیداد اما پیر دانا که اون رو به دقت زیر نظر داشت به روی خودش نیاورد و خدمتکارانش را صدا زد تا سکه های طلا رو در چند کیسه بریزه و به انبار ببره و در اتاقی در کنار انبار به احمد جایی بده که چند شب مهمونشون باشه و دست کلیدی رو به احمد داد که همراه خدمتکارا بره و شمدان دوازد شاخر رو با خودش ببره و در انبار بذاره. احمد اون شب و شبهای بعد مهمان پیر دانه بود و از اون به گرمی پذیرایی می‌کردند. و گاهی پیر دانا اون رو نزد خودش می آورد و به سوالاتش با مهربانی جواب میداد تا اینکه شبی اون رو صدا زد و گفت میدونم که مادر بینواد منتظرته گفتم که فردا صبح وسایل سفرت رو آماده کن این کلید رو بگیر برو در انبار رو باز کن و دوتا کیسه هم با خودت ببر و هر چه طلا روای میخوای تو این کیسه بریست. فردوسوب صبح یه شطور با یه قلان در اختیارت قرار میدم. این دو تا کیسه را هم بار شطورت کن و راه بیفت اما من از همین الان میخوام باید خدافزی کنم چون فرد و صبح اینجا نیستم و باید شبانه حرکت کنم برای انجام کاری به یه سفری برم. احمد دست پیر دانا رو بوسید و کلید رو گرفت و به انبار رفت. دو کیسه رو پر کرد از سکه های طلا. و دفعه چشمش به شمدان دوازه شاخه افتاد. هر چقدر سعی کرد نتونست وسوسه خودش رو دور کنه. جلو رفت و شمدون رو برداشت و در یکی از کیسه ها زیر سکه های تلا قایم کرد. و به خوابگاه خودش رفت. چند ساعت خوابید و صبح زود به کمک قلانی که پیر دانا بهش بخشیده بود کیسه ها رو برد و بارش رو کرد. با قلام خودش سوار شطور شد و به راه ادامه دادن و روز و شب راه رو می کردند. هفته نگذشته بود که به خونه رسید. مادر احمد بسیار خوشحال شد. احمد داستان دیدارش با پیر دانا رو براش توضیح داد و به قلام دستور داد که شطور رو در گوشه بذاره و ببندتیش و بهش غذا بده و کیسه ها رو با خودش به اتاقش برد. و مادرش رو برای اینکه بخواد غذا درست کنه به آشپزخونه فرستاد. در اتاقش رو بست و شمدان دوازده شاخه رو در آورد و در گوشه قرار داد. دوازده شم که از مغازه قبلا رو خریده بود در شاخه‌های شمدان قرار داد و شم‌ها رو روشن کرد و چوب دستی بلندی رو که از قبل آماده کرده بود به دستش گرفت و در کنار شمدان بایستاد. چند لحظه نگذشته بود که شوله ها شوله شدن و دوازده درویش از بین شوله ها بیرون اومدن و میچرخیدن احمد با چوب دستیش بالای سرشون بود و تا اونجایی که قدرت داشت ضربه های محکمی رو به سر و گردن دربیش ها میزد اما درویش های زرد چهره و لاغر و با لباس بلند و ریش دراز یک دفعه از زیر لباس خودشون چوب هایی رو درآوردن که بلندتر و محکمتر از چوب احمد بود و یکباره به طرفش حمله رفتن و به جونش افتادن و تا میخورد کتکش زدن و همین که احمد بیال و زخمی روی زمین افتاد درویش ها ناپدید شدند. احمد چند دقیقه به همون حالت موند و عاقبت تمام نیروش رو جمع کرد تا بتونه از جاش بلند بشه. تمام بدنش کبود شده بود. سر تا پاش زخمی شده بود. از اتاق بیرون رفت بلکه شطور و غلام رو پیدا کنه. ولی هرچی اطرافش رو میگشت اونها رو پیدا نکرد. احمد نمیدونست که چرا ماجرا به این شکل در اومده. دائم از خودش می‌پرسید کجای کار من اشتباه بود. مگه پیر دانا ها رو با چوب دستی کottak نمی‌زاد؟ و جواب درستی برای این سوالات نداشت و گاهی با خودش می‌گفت شاید پیر دانا چوب دستی رو با دست چپ گرفته بود و من چوب رو با دست راست گرفته بودم. دوباره به اتاقش برگشت و دید دو تا کیسه ای که با خودشم آورده بود خالی روی زمین افتاده و حتی یک سکه طلا داخلشون نبود و هر چقدر اتاق رو زیر رو کرد از شمدان نسی 12 شاخم اثری نبود نزدیک بود عقلش رو از دست بده و مرتبا از خودش میپرسید کجای کارم اشتباه بود پیر دانا همه چیز رو به من یاد داد ولی شاید یکی از فوتو رو به من یاد نداده بود. شاید هم درست توجه نکردم. کاش نفر پیدا می شد به من می که کجای کار من اشتباه بود. از داستان شمدان دوازده دردیش این نتیجه رو می گیریم که هرس و تمام به مال دنیا نداشته باشیم. چون نمیتونیم واقعیت ها رو ببینیم تمه مثل یک برق خیره کننده ای میمونه که چشم انسان رو خیره میکنه و بر اثر خیره شدن راه رو نمیتونه پیدا کنه و شخص طمعکار آبرو و شخصیت خودش رو فدا میکنه پس سعی کنیم تمه رو از خودمون دور کنیم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 جویی در, جوی در سرزمین های زیر دریا همه اینها و بیش از این ها در کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های ای صوتی.